بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد هنوز بحث آية الكرسي إذا مضرب الله لا إله إلا هو الحي القيوم قد يكون إذا تكفتنتون تلافزتون خصوصا جاي الله جبر ما غلبه يكون الله إن استفهمه الله فرق بأ الله بين أو أو فارق بزاريم تو خوندنمون تو ابتدای خصوصا این آیت کورسی که ما شروع میکنیم حالا هرچند که غیر از اینکه معنای اصلا آیه عوض میشه حالا اون جای خاص خودش داره ولی گفتم ما از باب تذکر بگم بریم به اصل مطلب انتهای این آیه این آیه عظیم از اولش تا آخرش تک تک اون مسائلی که توش اومده عظمت در ذات الله حی و قیوم عظمت در مخلوقات که آفریده سماوات و الارض عظمت در روز قیامت قیامت عظیم اونجا نیاز به شفاعت داری ای بنده من الذی عنده شفاعت ای بنده خدا غافل نشو اون روز عظیمه آیه عظیمه و معنای عظیمی رو در بر داره از جمله اون معانی که توش هست قیامت و روز آخرته روزی که خلائق حشر شدن روزی که از زمین میروین دوباره لخت اوریان، املمونی هاش میگه یا رسوا شرم و حیایی نیست. اون روز رسوا میگه بزرگتر از اینه که تو فکر می‌کنی. لخت و اوریان همه از قبل بیرون میان همه غرقن در حرق گناهان خودشون. دنبال جایگاه و پناهگاهی‌اند. پیامبران برای خودشون اخسخرها و حوزهایی دارن. که اگر کسی وارد آن بشه و بنوشه دیگه تشنه لبان نمیشه اون روزی که باهت تشنه لب بشی. اون روزی که تا اینکه ترازوها اوورده بشن تا حساب و کتاب بشه پنجه هزار سال باید منتظر بشی. اگر لیاقت دخول و ورود حوض رسول و سلم داشته باشی، اگر واقعا بنده و عبد حقیقی الله بودی، این شرف و این مقام را خواهی یافت که بنوشی از اون حوض رسول و سلم، بنوشی از اون آبتش لبان نشی وگر نه، و تشن لبان و عریان بگردی این اونور در صحنه محشر پنجاه هزار سال پنجا اللاف بشی صحنه عجیبی این روز عظیم که نیازه به شفاعت است صحنه عظیم و اید الاغلال فی هم و سلاسل و یسحبون روز عظیمی اون روزی که کسانی با غل و زنجیر قف شدن بگردنشون آویخته شده و فرشتگان کشان کشان با زنجیرهایی که هفتاد گزه میکشن بر سر و صورتی که چشمی نمیمونه گوشی هم نمیمونه در صحنه محشر میکشونم به طرف جهنم و پردشو میکنن در جهنم عمل نیکی ندارن که در ترازوی اوورده بشه که وز بشه اونا هستنگ کشان کشان اونها را میارن و در جهنم میندازن و راهی هم برای نجات نخواهند داشت چرا؟ چون حقیقت توحید را ندونستن چون توحید الله را نداشتن دوچار شرک و کف شدن چقدر عظیمه کلمه توحید که اگر نقض بشه عاقبتش وخیم و دردناکه حسرت و اندوه در پی داره که اون حسرت و ندامت و پشیمانی دیگه به درد نخواهد خورد چون راهی دیگه برای بازگشت و برگشت وجود نداره خیلی روز عظیمیه اون روزی که اصحاب گناه وقتی که کفه ترازوشون اوورده میشه و گناهانشون ترجیح پیدا میکنه بر نیکی ها سنگینتر میشه گناهانشون اتدرون من المفلس قال صلی الله علیه وسلم اتدرون من المفلس قال المفلس و من لا درهم له ولا دینار مفلس کسی که پولی نداره هیچی نداره قال المفلس من امتی از امت من من یاتی یوم القیامه بحسنات كالجبال، وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، خونير اخته، دشنامي بالشخصي داده، كسر قطاع زده، إنس حسن فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسناته، أزنيكياش إنهن ميجران، حتى لا تبقى من حسناتي شادي كذي ذا حسنات برش باقيينهن فتأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، لكافية رزقي بديش، أز بديهاي هاي ديجران ميران ميزران، غيابتك فلاني از گناهان اون برداشته میشه در کفه روزوی تو انداخته میشه و با گناهان دیگران تو عذاب قاهی دید حزیمه یک ذره فمن یعمل مثقال ذرتیم خیرن و ومن یعمل مثقال ذرتیم شرن یرا زره زره و مثقال مثقال حساب میشه حزیمه اون روز حزیمه اون روز در جهنم اون آب جوشانش حمیم وقتی که آورده میشه به تشن لبان از بس که غلیان میکنه و میجوشد صورت شخص پخته میشه همچون ماهی که در فر میذاریم گوشتی که روی زغال میذاریم کباب میشه صورت انسان کباب میشه با چی؟ با اون آبی همیمی که به شخص تشن لبان داده،, داده میشه روز عزیمیه اینجا هست که تو باید بیاد شفاعت باشه ای بنده این آیه وقتی که میخونی بیاد داشته باشه اونجا در صحنه قیامت نیاز شفاعت داری کی شفاعتت میکنه جز عملت رفتار نیکت متابعت و پیرویت از رسول الله صلی الله علیه و تویی که از خانواده و خاندان رسول الله صلی الله علیه و نیستی جز اهل سنت نشودی که بیای به سنت پیامبر اساس عمل بکنی آیا این لیاقت و این شرف رو خواهید داشت که رسول الله بیاد بگه این از امت منه این از یاران منه این از اصحاب منه این از کسانی هست که به من ایمان آوردن محروم میشی اس شفاعت راست اساسا محروم میشی از شفاعت فرشتگان محروم میشی اهل ذک نبودی اهل یاد اللهم مجالس ذک نبودی کی مدادت دادت برسه اونجا من ذلذی یشوع عنده الا اذنه، چطور الله اجازه بده چطور الله اجازه بده به فرشتگان که تو به تو شفاعت بکنن در صورتی که تو اهل طاعت و اهل عبادات نبودی نمیشه روز عظیمی این قسمت از آیه انسان را بیاد اون روز میندازه که به فکر خودش باشه همونطور که الله بزرگه عذابش هم بزرگه پاداشش هم بزرگه پاداشش بهشته برینه نعمت پایانه. عذابش الله شدید العذاب شدید عقاب شدت داره عظیمه باید این عظمت را بیاد داشته باشه کلی این مباحثی که تو این آیات آیه آي اومده کل این مباحث عظیمه چی گفتم از صفت ذاتیش از حی قیوم بودنش. چه از صفت که از بحث اف... از... از اون چیزی که به فعلش بر میگرده از قیامت و اون روز و اون حساب و کتاب ای که به دست داده میشه اصحاب یمین اصحاب شمال همه اینها بزرگه و علمش که هنوز بحثش مونده و باید ادامه بدیم یعنی ما بین ایدی هم و ما خلفهم اللهی که میداند اون چی میشود علمه علم الله باید سبب بشه که ایمان و عملت بیشتر بشه نه کمتر نه اینکه که دست بکشی عمل نکنی چون میترسی که شاید تو ابو جهلی باشی رفیق ابو جهلی باشی اخلاص در عملت بکار میبری میری تهجد میخونی اخلاص در اون کردارت بکار میبری چون میترسی ترس دلت اومده نکنه که من جز جهنمیان باشم نکنه که من رفیق ابو جهل ابو لحب باشم تلاش میکنی صحابه یاران آمدند نزد رسول گفته یا رسول الله اگر الله میداند که ما بهشتی یا جهنم چرا عمل بکنیم فرمودن اعملوا وظیفه شما عمل کردنه فکل میسر لما خلقه به آن چیزی که آفریده شدید آسان میشید اگر بهشتی بودی پیش الله به عمل اهل بهشت میسر میشید و عمل اهل بهشت برات شما آسان میشه و بدون عبادت برات آسان نمیشه مگر با اخلاص مگر اینکه دلت بکشه از دل بیای از دل یعنی با دل خودت نه اینکه اجباری توش باشه خیلی تو عمل مهمه ایمان به این صفت این وصف الهی ایمان به علم علم سابق و علم لاحق اون چیزی که میشه سبب میشه که هم رفتارمون درست بشه کردارمون هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ باطنی چه درست خوندنش و از رسولا در اون فعل و چه باطنیش بإخلاصش ألا لله الدين الخالص بدونك أجر شركي أجر تمع الدنيوي در عمل التؤمات عمل أخراويت بدون أن من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه هر كسي بخد عملي أنجام بده شريكي بري الله قال بشه. الله خدش وشركش ررهاو يكونه. بداردش نخهت خورد الله جش نخهت پذيروف بلك أن عملا مسبب بشه خالد مخلط در جهنم بشي بخدك الشرك أكبر بشه. خوصا در بحث دع خو در بحث دعا که بخشودنی نیست الله بنده ای را که بین خودش واسطه ای از مخلوقی که مخلوقی که نمیشنوه و نمیبینه قرار بده چرا ما این استثناء قائل میشیم بر اون طلب دعا از شخص صالحی بکنیم مشکلی نداریم که زنده هست است بینه ولی از اون شخصی که مرده و نمیشنود تو اگر طلبی داشتی که اون طلبت را به الله برسونی یعنی واسطه قرار بدی اون عملت شرک اکبره ون عملت سبب میشه که بهشت الله بر تو حرام بشه ما دیگه شعر ما که از ابراهیم بالاتر نیست ذره ای از خاکی که بر تن ابراهیم نشسته هم نمیشه ابراهیم با اون مقام و جایگاهش از شرک می ترسید. و دعایش این این بود و جنبنی وبنی ان نعبد الاصنام منو فرزندانم یا از شرک دور بساس رسول الله صلی الله علیه و علیه دعا میکرد که الله رو از شرک دور بداره و این مسئله خیلی مهمه چی, چی سبب میشه که این اقرار این اقرار به وجود بیاد در تو به این این بندگی و این ترس از الله در تو پیش بیاد اقرار به بی علم خدا ایمان به صفت علم الله علم, علم, علم سابق و لاحق شما نگاه بکن من میگم سابق یعنی اون چیزی گذاشته ولی لاحق اون چیزی که میاد مگر میشه بعد کسی علم به آینده نداشته باشد کسی علم به آینده نداشته باشد و بعد بیاد بدون اینکه نظمی از اون آفرینش به هم بخوره یعنی یک خلقتی آفرینش ایجاد بکنه که این خلقت آفرینش به هم نخوره و ذباتش مثلا شما نگاه بکنید ماشین ترمز براش گذاشتن. چرا ترمز براش گذاشتن؟ برای آینده اینکه دو میدونن که اگر ترمز نذارن تصادف رخ میده ماشین نمی ایسته درسته؟ پس این ترمز رو ایجاد کردند برای اینکه ماشین بی ایسته. به نسبت اون چیزی که رخ داده در آینده و برای که در آینده دیگه از همون حادثه دوباره تکرار نشه الله اگر نمیدونست در آینده چه رخ میده چطور زمین را در این فضا نگه داشت که به چرخ دور خودش بدون که تصادف بکنه با ماه خورشید، زحل اتارود و دیگر ستاره ها و سیاره هایی که هستن چرا به خورشید نزدیک نمیشه چرا زمینی که جاذبه داره مایی که اگر بالا بریم دوباره به طرف خودش میکشه چرا ستاره ها و سیاره دیگر به طرف خودش نمیکشه چطور که هیچ ستاره ای از بیرون نمیتونه وارد اذن بشه و وارد زمین خودمون بشه و متلاشی میشه علم سابقه و علم لاحق از اون چیزی که میاد میدونست الله جل و خبر داده هم الله جل شانه از اون چیزی که میشود از نشانه های قیامت دجال مییاد و ماجوج میاد بعد از, از مرد حشر اینا میگه نه علم آینده هست حساب و کتاب دفتر ترازو هست جهنم اینطوریه هنوز که نیومده هنوز که نشده حساب و کتاب همینا علمه شک در علم خدا شک در خداوند یعنی کفر بس الله میداند الله میداند از آن چیزی که میشود و وظیفه ما عمل کردن عمل کردن است الله جل جلاله در قرآن میگه لا يسال عما يفعل وهم يسالون هیچ وقت سوال نمیشه درباره خدا لا يسال عما نمیتونید بگید چرا خدا میدونه چطور خدا میدونه دو خدا بدن دونسته دخالت نکنید در کار خدا لا يسال عما يفعل الله در مقابل کاری که انجام داده و میده افعالش هیچ وقت نمیتونید الله راضیه ببری ببرید چطور الله میدونه لا يسال عما يفعل وهم يسالون یعنی شما سوال میشه اگر عمل نکردی چرا عمل نکردی ما این که باید حساب و کتاب بشیم ما این که باید حساب پس بینیم نه خداوند ما مسئولیم در مقابل رفتار و کردارمون نه در مقابل رفتار و کردار دیگران و خداوند این دیگه ما مسئولش نیستیم هر کسی مسئول خودش هست اهل سنت وسطن در بحث ایمان به الله بین اونهایی که اعتقاد جب دارن میگن الله ما رو مجبور خلقت کرده و بین اونهایی که بین اونهایی که گفتن خداوند کاره ای نیست همه کار ما خودمونیه ما خالق اعمال خودمون هستیم الله کاره ای نیست من اگر بلم میکنم خودم بلم میکنم خدا کاره ای نیست نفی مشیت مشیت و اراده از خداوند میکنه میکنن الان من نمیخوام در تفصیل قضیه قضا و قدر برم فقط یک آیه رو میگم در رد اینها ما مکلفیم چون الله از ما فعل خاصه اعملوا درسته؟ از ما عمل خاصه اقیموا الصلاه اتو الزکا عمل خاصه پس ما مجبور نیستیم ما مکلفیم و ما هم مختاریم و اون کاری که انجام میدیم در زیر مشیعت الهیه و ما تشاؤنه الا ایشا الله یعنی هیچ فعلی را شما انجام نمیدید مگر با مشیعت الله الله باید بخواد تا اون کار انجام بدی اینها اومدن چی؟ مشیعت و ارادت را کاملا از خداون نفکر گفتن نه خداون کاری ای نیست همه کار خود انسانه ما گفتیم در صفت حی و قیوم چی گفتیم؟ در وصف قیم چی گفتیم تدبیر امور ما دست الهه تمامی اعمال روزمره از این هوایی که تو سینه من میره نفس میکشم اون غذایی که خوردم سوخ میشه بعد وارد خونم میشه از اون آبی که خوردم تمامی این جریان رو که تدبیر میکنه الله با چی؟ با اراده و قدرتش و قیومیتش اینها دچار چی شدن؟ الحاد و نقض این صفت شدن نقض صفت چی؟ اراده و مشیت به خاطر همین ابو الحسن اشعری و مات جلوی واسل ابن عطای صدق و ابن نعتا میش از جلسه علما مثل حسن باسری بعد اومد گفت که با من منجور در نمیاد که مسلمان‌ها گفت با من منجور در نمیاد که ك... مثلا خداوند بدون از آینده با من منجور در نمیاد خداوند اصلا کاری نیست در مقابل اعمالی که ما انجام دی اگر قراره که الله بدونه اون فعل زنا میشه فعل خدا و خدا اقرار داره بر فعل زنا و نباید زنا بد باشه خب این شبهش این شبهش، این, م... این مشکل درکش این فهم ناقصش سبب شد که یک فرقه ای رو به اسم به وجود بیاره ابو حسن اشعری اومد شاگردش نبود شاگردش شاگردش بود شاگرد دبوی واصل شاگردش به اسم دبوی ابو الحسن اشعری اول معتزلی بود اول همین قضیه همین اعتقاد رو داشت که الله کاری نیست همه کاره ما خودمونیم اومد با خودش فکر زد خب چطور جنببندیم بین این نسوس الله میگه من مشیعت دارم الله میگه که من اراده دارم و ما رمیت اید رمیت ولكن الله رمه خب اثبات رمیه به خداوند تصدیر رمیه رسول الله میگه که تو اون موقعی که پرد کردی در جنگ بعد خاک رو پاشیدی تو تنها نبودی که اونو پرد کردی و پاشیدی تو صورت اونها بلکه کی بود بلکه اون کسی که این خاکها را به چشم اون مشرکین رسوند که کور بشن و نابینان خداوند به ما رمیت اذ رميت ولكن الله رما یعنی اصابت اون چیز یا نیزه و اون شمشیری که دست اصحاب بود اصابتش با خداوند بود این, این طور شد این نصرت الهی بود که 300 نفر در مقابل سه هزار نفر پیروز بشن پس اثبات چیه اثبات مشیت و اراده برای الله این بود که ابوالحسن اشعری جدا شد از این فرقه و این طائفه و این گروه و این طرز تفکر اهل سنت واسطه میگن بعضی از امور بعضی از امور ما درش اختیاری نداریم شکل قیافه شما مثلا پدر و مادر تو اهل فلانه یکی اهل ایرانه یکی اهل نمیدونم فلانه یکی طایفه‌اش فلانیه شما دخالت داری تو اینکه فرزند کی باشید و کی نباشید؟ نه شکل تو چطوری باشه نباشه نه ما توش مجبوریم یه سری چیزا مکلفیم توش اختیار داریم توش اومدنمو به اینجا الان از اینجا میخواد بره بیرون میتونه بره یا نمیتونه بره میتونه بره اختیار داریم توش این کاری بنسوس شر نداشته باشیم. همینطور عقل خودمون به کار ببینیم. من میتونم شما را کور بکنم یا نه؟ میتونم. اراده دارم ندارم؟ اراده دارم. ولیکن این اراده من نمیتونه نافذ باشه. نمیتونه این ارادم عملی بشه. مگر با اراده الله. و یک مسئله خیلی مهمه به دعات. ترس و واهمه که در دل دعات میاد. از غیر، از دولت، از نمیدونم. میگن یا سرویس های امنیتی بگیم یا هر چیزی بخوام بگیم اسمش بذاریم این قد او حد در قلب آوردن از مخلوق خلق خدا یا بعضی از از زناشون اونقد میترسن یا از مادر بگیم از پدر بگیم یا از هر چیزی بگیم جدا دارم میگم ما. این قد اون ترس تعظیم شده که ترس از خدا به فراموشی سپرده شده حرف از توحید نزن حرف از سنت نزن حرف از فلان نزن دعوت نده نگو از همه چیز میترسه از سایه خودش هم میترسه این محبوط یا مذمومه یا خوبه مزمومه این چیره شدن ترس وحشت این مزمومه حتی از بیماری رسول الله صلی الله علیه و آله چی به اصحابش یاد میداد علم به اصحابش میگفتن بدونید لو اجتمعوا على ان يضروک بشی لن يضروک بشیئا الا ما قد كتبه الله جن انس بشن که آزاری آسیبی ضرری بهت برسونن نمیتونن مگر آن چیزی که الله نوشته باشه چرا به ترسی از خلق خدا نهایتش مردنه تا کی نمیخوای بمیری مرگ حق بذار بمیر ولی با روسفیدی بهتر از این که تو ماشینت بمیری که تصادف بکنی آرتت کشف بشه و یا زیر خربار بیرونت بیارم رخت آریان بازلزله بمیری که لاخر بذار خونت ریخته بشه شاید با این خونت ارواحی زنده بشن کسانی بیدار بشن از خواب غفلت در بیان این مسئله من گفتم خیلی نیاز هست. در بحث ایمان به این جریان رب داره به ایمان به اسما صفات الان این یک اسم از اسمایه الله و یک سوصف از اسبسفه الله داریم یاد میکنیم من هم علم و آثار علم رو داریم میگیم از آثار این علم اینی که در, در ما ایجاد ترس از الله فقط میکنه سبب میشه که اخلاص در عمل ما انجام بدیم متابعت و پیروی از رسولات سلام بکنیم سبب قوت قلب شجاعت شهامت میشه در ما نبوزدلی که صفات بدیه این صفات نیک رو در تو میسازه نمیری که سینه سفر بکنی که كب... بگن که تو شخص شجاعی این ریاست چه چی سبب میشه که تو دوچار ریا نشی اخلاصت اخلاص در دین اخلاص در عملت و که ادارت یعلا ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا لا یحیطون من علمه الا بماشه کسی نمیتونه مگر یعنی علم الله رب بدونه مگر اون چیزی که الله بخواد همونطور که بحث خضر و موسی پیش اومد گفتن که از تو دوناتر هست گفت نه بعد الله بهش گفت که خضر هست و یه سری چیزها خضر میدونست که موسی نمیدونست حالا این مسئله بازان دوباره تکرار میشه الان بحث علم الله کافیه که در بحث علم الله بدونیم که اگر گفتیم دریاها مرکب بشن که بنویسیم از آیات الله تمام نمیشه از اون چیزی که الله متصفه بهش هست از افعال و که دار وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤود حفظهما الله اکبر وسع کرسیه السماوات کرسی مخلوقی یا نه ایش چیز مخلوقی كرسي کرسی جایگاهی که الله میاد از آسمان از, آسم... از آسمان ها با آسمان دنیا جایگاهیه ابن عباس میگه جایگاه قدمین الله یعنی اونجایی که الله فرود میاد از آسمون ها به آسمان دنیا چطور الله اعلم شخص این من ما مالک گفت الله چطور رفت بالای عرش ابراهمانو على عرش استوا چطور مصیرا چطور رفت بالای عرش قال ايه استوا معن بالا رفتن میدونی معنشیه ول کیف مجهول والا ایمان به واجبه کیفیتش نمیدونیم ما وقتی که بالا میبینیم پرنده میذاریم پرنده بال میزنه الله که مثل ما نیست فلا تدریب لله برای الله که نباد مثال بزنی والا ایمان به واجب ایمان به اینکه الله بالا رفته واجبه الله بالا هست الله یه طرف مخلوق یه طرف با همدیگه قاتی نکنیم متباینن یعنی جدا از همدیگرن نمیتونه مخلوق در خالق جا بگیره و خالقم جاش در مخلوق کسیف نیست مخلوقی که پر از نجاست و ما برای خودمون نمیپسندیم دفش میکنیم برای خدا بپذیریمش از نجاست و از الله منزه سبحانه سبحان پاک پاک از هر نوع پلیدی و زشتی و بدی و نقص مخلوق ناقصه پس جاش تو الله نیست مخلوق ناقصه وسع کرسی و سماوات والارض الله اکبر وسع کرسی و سماوات کرسیش به وسعت آسمان ها و زمینه حدیثی هست یکم زعف هست ولی خود آیات قرآن تاییدش تا میکنه تشبیه در حدیث اومده چون حدیث زعیف که ما میگیم لازمش این نیست که دروغ باشه احتمال صحیح داره ولی خود چون یکم نقص تو اسناد هست ما نمیتونیم حجت قرارش بدیم ولی خب معناش از قرآن تأییده یعنی مورد تایید قرآنه حدیثی که رسول مثال میزنن میگه آسمانها ها و زمین در مقابل کرسی مثل یک حلقه کوچک در یک سرزمین پهنواد دریا رو نگاه کنید انگشتر اونجا کنار ساحل بندازید کل آسمانها ها و زمین در مقابل کرسی اینه کرسی هم در مقابل عرش یک حلقه هست عرش و تمامی مخلوقات در کف دست خداوند در روز قیامت و ما قدر الله حق قدره بچی میگه والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات مطويه يعني طي بيمينه يمينه خداجي دستشه والسماوات كلها سمرها وزمين ايه مخلوق شيء هيك شيء ليس ذره هناس كايش كجا خط وسع الكرسي والأرض ولا وهو العلي العظيم الله الله خیلی عظیم مخلوقش هیچی نیست در مقابلش چطور الله در این مخلوق ناچیز جا میره رسول الله صلی الله علیه و به معراج میره آسمانی به آسمان دیگر جبرئیل همراهشه میرسه به آسمان هفتم جبرئیل میگه من نمیتونم یه محمد اینجا و جایگاه مقام من نیست تو بفرما من اینجا منتظرت میشم اونجا هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم با اون مقامش منزلتش بالای آسمان هفتم میره بیاد مستقیم از الله بشن به بدون واسطه صحابه فرمود يا رسول الله ترفتي معراج الله صحبت بدكري فالسخلش رشنيني الله راديني رديني الحجاب هو نور بين من الله حجابي از نور بود لو اشرقت صبحات وجه لأحرقت مدة بصري من خلقه وكما قال عليه الساطر يك نور شعاع صورة الله يك نورش اگر از اون أم پرده امور بكون كل مخلوقات نابود بشان مخلوقات توان تحمل يك نور وجه الله رو ندارد يك نور وجهش بعد میام میگن چطور بعد از در قیامت میبینیم الله را به عنوان یک نعمت بزرگ قیامت یوم تبدل الارض و غیر الارض قیامت غیر از این میشه اونجا این توان رو الله میده به مخلوقاتش ولی الان در با این شأن و مقام ما نمیتونیم تحمل یک شعاع نور الهی رو داشته باشیم این مخلوقات خیلی عاجزان خیلی ناچیزن نمیتونن تحمل عظمت یک نور الهی رو بکنن اینجا هست که الله متذکر میشه خلق خودش را به رخ ما میکشونه آفرینش خودش یک کرسی خدا من اینقدر عظیمه ای بنده چرا نمیخوای سر بسجدش بذاری چرا ازش غافلی چرا الله را یاد نمیکنی این اذکاره چقدر از این اذکار خوندی چقدر از فوت شده کجاست الله در زندگی این اینقدر که ذکر نان و آبت میکنی چقدر ذکر الله کردی اینقدر که غم غصه دنیا رو داشتی اینه در زندگی با زنده بشه. اینو باید ما بیاد داشته باشیم. خلق خدا خیلی عظیمه تک تک این ستاره ها میریم بیرون. چرا سنت که شب اگر بیدار شدی نگاه ستارگان بکنی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله منشودا نگاه ستارگان گان میکرد و میفرمود ربنا ما خلقت هذا باطله وقت اجازه نمیده که حق این آیه رو ایفا بکنیم هرچند که اگر وقتم اجازه بده اینقدر محتوای این آیه زیاده که نمیشه حقش رو ایفا کرد. هذه آيات اول تآخرش بس في الله جل شانه وعزمتش صفات كمالش انتهاي آيات براي أن الله بهما نشون بدأ از عظمتش ميقى وسع كرسي والسماوات والأرض كرسيش في وسط وهو العلي والعظيم الله متعالية متعالية علو بمكان متعالية عالية برتمامية مخلوقاته يعني مخلوقات پستا، زلیلا، کوچکا، دنیا ملعونه و ملعون ما فيها الا ذكر الله و ملعونه پسته و معنی دقیقش مترود یا مشمول رحمت الهی نیست خب هم معنی پستی رو شاید دربر بگیره چیزی نیست اصلا دنیا و آسمان و زمین با کلمه کنف یکون الله آفریده شدن الله متعالیه، منزه یعنی سبحانه، منزه مکانش اینجاها نیست، مکانش بالی آسمان ها، جدا از مخلوقاته متعالیه و متعالیه حرفش قهرش جبروتش کسی نمیتونه رو حرف خدا حرف بزنه. اگر بگه کن فی کن میشه فرزند نوح به علم شنایی که داشت مغرور شد قال سعاوی اله جبلن یعصمونی نوح که علم به قدرت الهی داشت چی گفه فرزندش؟ قال لا عاصمه یو امروز دیگه راه نجاتی نیست این علم با اون علم فرق میکنه اون مغرور به علمش شد این ایمان به علم یقین به علمش داشت به اون علمی که وحی برش شده بود این علم نجاتش داد علم خدایی اگر دنبال نجاتی دنبال علم نبوت باش وحی باش این نجاته اگر دنبالش نبودی و نخوندی و نشنیدی مثل که میشی فرزند نوح وقت متکی به خودت نشو و سلام از دعاشی بود و لا تکلنی نفسی ترفتعین من رو بخودم مزفار اگر میخوای بخودت سپرده نشی توکل بر الله با اتخاد اسباب با گرفتن سبب با علم علم شرعی علم وحی دنبال وحی نیسی چطور میخوای نجات بیابی چطور بدون علم میخوای نجات بیابی میگه میشه بدون علم نجات بیابی میگه امکانش هست امکانش نیست اندام بدون علم نجات بیابی اینجا هست که ما باید دنبال و الو یک مسئله که لو بعداً دوباره تکرار خواهد شد. الان فقط اینجا از باب اشاره میگم چون شاید اونجا فراموش بکنم. دوتا مسئله در قرآن ما از خدا میخواهیم تکرار میشه در زندگیمون. در سوره فاتحه می انتهای سوره فاتحه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این دوتا تذکره. این دوتا یکی گمراهی، یکی غضب و خشم. عملی که سبب خشم الهی بشه و عملی که سبب گمراهی بشه. اولی‌ها اونایی که گمراه شدن. یا اونوی که مغذوب علیه شده یهود رسول الله را میشنخته یعرفونه و کما یعرفونه ابنه پسترین انسان ها چه کسانی کسانی که میدانن و عمل نمیکنن مثل ابلیس مغضوب علیه مثل فرعون مثل یهود یعرفونه رسول الله را میشنخته کما یعرفونه ابنه هم نمیدونن ولی عمل نمی کنن از این جمله دسته اشخاص نباشه دسته دوم کسانی که نمیدونن و دنبال یاد گرفتن نیستن ضالینن گمراه چرا از انسان گمراه میشه چون دنبال علم نیست دنبال تفسیر قرآن نیست دنبال حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست از این از که من متذکر میشم که اینجا میگم آدم باید دنبال باشه تو دریا داری غرق میشی راه نجاتت سوار کشتی شدن سوار قایق شدن بری غرق میشی باید بی ایک جوی پناه ببری پناهت ای که تو را نجات میده در این دنیایی که پر از فتنه هست چیه؟ علم بشریعت. هرچند که ما علوف و علوف داریم علوف قهر داریم و علوف مکان و ذات داریم و علوف قدر داریم علوف ذات الله متعالیه بالای عرش علوف قهر کنف یکونه بر هر کسی کن یکونه گفت من نوح نابود نابود قوم سمود قوم لود چیزی که بخواد خدا میشه کسی نمیتونه جلوش بگیره قهره حکم خدا بر حکم تمامی اشخاص غلبه داره و علوه قدر مکانته جایگاهه من گفتم الله متعالیه صفاتش همه کماله نقصی در صفات الله نمیاد نقصی در صفات الله به هیچ وقت کسی که یک ذره نقص داشته باشه مستحق پرستش و عبودیت نیست و هو العلی و العظیم الله عظیمه ذاتش عظیمه کرسیشی قدع عظیم بود خود الله چیه؟ قابل قیاس نیست عظمت الله با مخلوقی از مخلوقاتش قابل قیاس نیست بقیقه همین الله چی میگه فلا تطربو لله الامثال برای الله مثال نزنید الله قابل مثال نیست نه با خودتو نه با مخلوقی نه با جانداری نه با فرشتهی با هیچ کس قابل قیاس نیست الله خب این آیت الکرسی این آیه‌ای که قبل از خواب بعد از نماز صبحگاه شامگاه می‌خونیم معناش هم خیلی بزرگه و پاداشش هم خیلی بزرگه جنیان دیگه نمی‌تونن نزدیکت بشن که تو را وسوسه به کار بد بکنن گمراهت بکنن اگر مینالی نمی‌تونم چشم کنترل کنم چشم نامحرم دارم دوچار شهوت چش شدی، زنای چش شدی، ان العین تزنی و زناها نظر و این سمع تزنی با دخترا حرف میزنی، دختری با پسر حرف میزنی بدون که در خوندنت، در تلاوتت به این آیه در صبحگاه و شامگاهت و بعد از نمازات مشکل داری خوب درست نخوندی که گمراه داری میشی اگر خوب میخوندی، اگر با دقت میخوندی، اگر معنا و عظمت این آیه را درک میکردی نگاه اون کوچکی گناه نمیکردی نگاه اون بزرگ می کردی که از تو ناراض میشد بر تو خشگیم میشد پس ضعفه در کجاست ضعف در خوندنت ضعف در تدبرت افلا ی تدبرون القرآن امعلا قلوب اقفالا قلبت قفله بر سر زبان داری میخونی چطور میخوایی چشمت پاک بشه و پاکیزه بشه اگر از ناپاکی چشمت در مقابل محرمات و نامحرمات مینالی بدان که در اسکارت در وردات ناقص داری عمل میکنی کوتاهی داری میکنی درست عمل نمیکنی که تورا نجات نمیدهن صلی اللہ محمد و محمد